فصل چهار یک شنبه صبح وقتی زنگ کلیساها در سر تا سر روسته ساحلی به صدا در میآمد کل دنیا به همراه بانو برمیگشتند خانه گتسپی و خوش و خندان چمن های را منور می کردند جوان که لابلای گل و ککتل وول می میگفتند. گتسپی قاچاقچی مشروبه؟ یه دفعه یکی کشته؟ طرف فهمیده بوده برادرزاده فون هیندنبرگ، و البته قوم و خیش نچندان دور شیطون عزیزم یه گل برام بچین و ته اون مشروبم برام بریز تو اون گیلاس کریستال. یک بار اسامی هر کسی که آن تابستان به خانه گتسپی آمده بود را در فضای خالی جدول زمانبندی قطارها یادداشت کردم آن جدول دیگر کهنه شده و از جای تاخردگی ها پاره در سربرگش نوشته این برنامه تا پنجم جولای 1922 معتبر است اما هنوز می توانم آن نام های کمرنگ شده را بخوانم و این اسامی گویاتر از کلی گویی های من در مورد آن است که مهمان نوازی های گتس را می پذیرفتند و با ندانستن هیچ چیز در مورد او حرمتش را نگه می داشتند از ایست اگ، چستر بیکر و لیچ ها می آمدند و مردی به نام بانزن که از زمان دانشگاه می شناختمش. در سیوت که تابستان قبل در مین غرق شد و هورن بیمز و ویلی ولتر و کل ایلوتای فیب اسم بلک باک که همیشه گوشه باغ جمع می شدند و برای هر کسی که با آنها نزدیک می شد مثل بوز پوز بالا میکشیدند. علاوه بر اینها یادم میآید که فاسینا اوبراین دست کم یک بار آمده بود و دخترهای بدکر و بروئر جوان که دماغش در جنگ تیل خورده و کنده شده بود و آقای آل بروکسبرگر و نامزدش دوشیزه هاگ و آردیتا فیتز پیتزر و آقای پی جوت که یک دوره رئیس لژیون آمریکایی بود و دوشیزه کلود یا هیپ با مردی که همه میگفتند راننده اوست و پرنس یک جای مهمی که به او دوک میگفتند و اگر اسمش را هم می دانستم حالا فراموش کردهام. همه اینها در آن تابستان به خانه گهتسپی می آمدند. یک روز صبح اواخر ماه ژوئیه ماشین لوکس گتسبی وارد مسیر سنگلاخ جلوی خانه من شد و پیچید جلوی در و با بوق سنوته خود آهنگی نواخت. این بار اولی بود که سراغم میآمد. هرچند من دوبار به میهمانی هایش رفته بودم، سوار هواپیمایش شده بودم و به خاطر دعوت ها و اصرار بیش از حدش بارها از ساحلش استفاده کرده بودم. صبح بخیر رفیق قدیمی. گفتم امروز که قرار با هم نهار بخوریم، بد نیست یک گشتی هم تو شهر بزنیم. گادسی با چنان حالتی به رکاب ماشین تکیه داده بود که به طرز غریبی آمریکایی به نظر می رسید و این به نظر من ناشی از عدم انجام کارهای سخت در جوانی و بیشتر از آن ناشی از قشنگی بیشیل پیله بازیهای بازی های حیجان آور و پر افتخیز بین ما بود این خصوصیت همیشه و رفتار مبادی آدابش غلبه می و به شکل نوعی بیقراری بروز می کرد هیچ وقت آرام و قرار نداشت یا با پایش ضرب می گرفت، یا با بیقراری دستش را باز و بسته می کرد. نگاه تحسین برانگیزم را که به ماشینش دید از روی رکاب پرید پایین تا بهتر تماشا کند قشنگ رفیق نه؟ تا حالا ندیده بودیش؟ دیده بودم، همه دیده بودند یک ماشین کرم پر رنگ بود با جلای نیکل که اینجا و آنجا در قد و غواره قولاسایش انواع جاکلاهی و جاغذایی و جا آچاری چشم ربا زده بود بیرون و شبکی تو در تویی از انواع شیشه جلو که یک دو جین خورشید را منعکس میکرد به آن حالتی پل پله داده بود. در آن گلخانه سبز چرمی پشت آن لایه های متعدد شیشه نشستیم و راه افتادیم سمت شهر. در طی ماه قبل شاید چند باری با او حرف زده بودم و ناامیدانه به این نتیجه رسیده بودم که حرف چندانی برای گفتن ندارد. در نتیجه این تصور اولیه که او آدمی مهم و ناشناخته است، رنگ باخته بود و برایم بدل شده بود به صاحب مهمان مجلل که در همسایگی هم زندگی می کرد. اما این ماشین سواری همه چیز را به هم ریخت. هنوز به دهکده وست اگ نرسیده بودیم که گتسوی های جمله‌های شوشروفتاش را نصفه کار ول کرد و شروع کرد به دست کوبیدن شلوول روی شلوار قهوه کمرنگش و ناغافل گفت ببین رفیق قدیمی نظرت درباره من چیه کمی خجالت زده شروع کردم به سرهم کردن های کلی که مناسب اینجور جور هست حرفم را قطع کرد و گفت خب می‌خوام یه چیزهایی در مورد زندگیم به شما بگم دوست ندارم با این داستان که از من شنیدی تصور غلطی ازم پیدا کنی پس از شایعات عجیب و غریبی که همیشه چاشنی گفتگوهای تالارهای خانش بود خبر داشت به خدا راستش میگم و دست راستش ناگهان به نشانه این که اگر دروغ بگوید گرفتار مکافات الهی شود بالا رفت من تو میدلوست پسر آدم های پول داری بودم که همشون مردن تو امریکا بزرگ شدم ولی چون همه اجدادم سالیان سال تو آکسفورد درس خواندن منم رفتم اونجا یه جور سنت خانوادگی زیرچشمی نگاهش کردم و فهمیدم چرا جردن بیکر معتقد بود دروغ میگوید وقتی داشت میگفت که در آکسفورد درس خوانده چنان سری از این جمله گذشت که به نظر می رسید آن را قورت داد یا حتی زبانش گرفت به نظر می رسید، پیش از این هم با گفتن این جمله معذب شده بود و با این تزلزلی که نشان داد، تمام ادعاهای او شد باد هوا و من با خودم گفتم که این آدم ریگی به کفشش دارد. حرفش را بریدم و گفتم، کجای می وست؟ سان فرانسیسکو. آها، همه خونوادن مردن، پول زیادی افتاد دستم. صدایش گرفته بود، انگار خاطره نابودی ایلو تبارش هنوز دست از سرش بر نداشته بود. یک لحظه شک کردم دارد سر به سرم میگذارد اما یک نگاه کوتاه او قانم کرد که اینطور نیست. بعد مثل یه مهاجره‌ی جوان تو پایتخت‌های اروپایی زندگی کردم. پاریس، ونیز، روم. جواهر جمع می‌کردم، بیشتر یاقوت. حیوانات وحشی شکار می‌کردم، نقاشی می‌کشیدم. در واقع این کارها رو برای دل خودم میکردم. می‌خواستم یه اتفاق غمانگیزی که مدتها پیش برام افتاده بود و فراموش کنم. به زور جلوی خنده ناباوران هم را گرفتم. حرفهایش آنقدر نخنما بود که هیچ تصویری در ذهنم شکل نمی گرفت. جز تصویر شخص دستار به سری که در جنگل بلونی دنبال ببر کرده و از هر درز و شکافش اره بیرون بریزد. بعد جنگ شد رفیق. اتفاق خوش آیندی بود. به هر دری زدم تا بمیرم ولی انگار تلسم افتاده بود به زندگیم جنگ که شروع شد درجه افسری گرفتم و شدم صدفان یک تو جنگل ارگون باقی مونده ی گردان مسلسل خودم رو اونقدر کشیدم جلو که از هر طرف نیم مایل فاصله افتاد بین ما و پیاده نظام نمیتونست بیاد سمت ما دو شبانه روز اونجا موندیم صد و سی نفر با شونزده تا مسلسل لوئیس بالاخره وقتی پیاده نظام رسید نشان سلشگر آلمانی رو بین تل جنازه ها پیدا کردن منم درجه گرفتم و شدم سرگرد و تک تک دولت متفق به هم مدال دادن حتی مونتنگرو همون منتنگروی فسقلی زیر دریای آدریاتیک منتنگروی فسقلی او کلمات را بلند می کرد و با لبخند برایشان سرتکان می داد با لبخندش تاریخ مشقتبار مونتنگرو را درک و با مردم شجاع و مبارزش همدردی می کرد. این خنده قدردانی شایستهی از اوضاع ملی مونتنگرو بود چرا که قلب گرم و کوچک منتنگرو عذاب و مکافات زیادی کشیده بود. حالا دیگر ناباوری در افسون غرق شده بود. مثل ورق زدن سریع یک دو جین مجله بود. دست در جیبش کرد و یک تکه فلز را که به روبان آویزان بود کف دستم گذاشت این مدال مونتنگروه با حیرت دیدم که واقعی به نظر میرسد. رسد نوشته ی رویش را رو خواندم. نشان دی پنیلو منتنگرو سلطان نیکولاس برش کردن پشتش نوشته بود سرگرد جی گتسبی به پاس شجاعت شگفتانگیزش. این هم یه چیز دیگه که همیشه همرامه. یادگاری آکسفورد، جلوی کالج ترینیتی گرفتنش. اونی که سمت چپ من واسطه الان شده لرد دانکاستر. عکسی بود از پنج شش مرد جوان که کتهای دانشجویی پوشیده بودن و جلوی گذرگاهی ایستاده بودن که آن طرفش کلی منار و سرمناره به چشم میخورد. گتسبی توی عکس کمی جوانتر به نظر می رسید و یک چوب کریکت دستش بود. آه پس همش راست بود. داشتم پوست درخشان بابرها را در قصرش کنار کانال بزرگ ونیز تصور می کردم. می که صندوقچه پر از یاغوتش را باز می کند تا در عمق غزرشگی رنگش زخمهای دل شکستش آرام بگیرد. در حالی که با رضایت یادگاری هایش را در جیبش می گفت امروز می خوام ازتون خواهش بزرگی بکنم. برای همین فکر کردم باید یه چیزایی ازم بدونین. نمیخوام فکر کنین من یک آدم بی خودیم. میدونید من همش جاهای عجیب غریب بودم. هی hey, کشیده شدم این طرف و اون طرف تا بلکه غمی که توی دلم رو فراموش کنم. بعد مکسی کرد و گفت. همین بعد از ظهر درباره حرف میزنم. سر نهار؟ نه بعد از ظهر. خیلی اتفاقی فهمیدم که دوشیز بیکر رو به چای دعوت کردی. منظورتون اینه که عاشق دوشیز بیکر شدی؟ اون نه رفیق اما دوشیزه بکر لطف کرد و قبول کرد که در این مورد با شما حرف بزنم کوچکترین اطلاعی نداشتم که این موضوع چیست اما نسبت به موضوع بیشتر دلخور بودم تا کنچکاف جردن را به چای دعوت نکرده بودم که در مورد گتسبی حرف بزنیم شک نداشتم که چیزی غیر عادی از من میخواهد و یک لحظه از اینکه پا در چمن شلوغ پلوغش گذاشتم پشیمان شدم گاتسوی حاضر نبود حرف دیگری بزند هرچه به شهر نزدیکتر میشدیم، او موقرتر میشد. از پرت روزولت گذشتیم جایی که میشد از آن به کشتیهای اقیانوس پیمای که دورشان قرمز بود نگاه کرد بعد به سرعت از کوچه پس کوچه های درب و داغان پایین شهر که با قلب سنگ فرش شده بود و دو طرف آن مشروب فروشی های تاریک و هنوز مشتری داره دوران طلایی اوایل قرن بیستم ردیف شده بودند رد شدیم بعد در رای خاکستر در دو طرف دهان باز کرد و در حال عبور یک لحظه خانم ویلسون را دیدم که با همان شور و اشتیاق همیشگی لهله میزد و یه بنزین را فشار میداد با گلگیرهایی که مثل دو بال باز شده بود تا وسط آستوریا را نورپاشی کردیم فقط نصفش را چون وقتی پیچیدیم لای ستونهای زیر خط هوایی صدای قارغار موتورسیکلتی به گوشم خورد و پلیس ای کنار ما سبز شد. گتسبی گفت: ام. قیل خب رفیق." سرعت ما کم شد و او کارت سفیدی را از کیفش بیرون کشید و گرفت جلوی چشم پلیس. پلیس در حالی که به نشانه سلام نظامی به کلاهش میزد گفت: "بله قربان، دفعی بعد به جا می آرمتون آقای گتسبی، خیلی عذر بخوام. پرسیدم: "چی بود؟ مدرک آکسفورد؟" یه تونستم کاری برای رئیس پلیس بکنم و اونم هر سال که ریست برم کارت پستال می فرستم. بالای آن پل بزرگ بودیم، آفتاب از لابلای تیراهنها راه راهی از نور و سایه روی ماشین های در حال حرکت ایجاد می کرد و شهر در آن سوی رودخانه بالا می آمد. به شکل کپه های سفید و حب قند هایی که همه با نیت کسب حلال برپا شده بود. نیویورک از بالای پل بارو که دیده شود، همیشه شهری است که برای اولین بار دیده می شود و خودش این بشارت را میداد که رازالودترین و زیباترین شهر جهان است. مردی در نشکشی پوشیده از گل از کنار ما گذشت و از پیش دو کالسکه با پرده های پایین کشیده و بعد هم کالسکه های شادتری برای دوستان و آشنایان. این دوستان و آشنایان، با چشمهای غم زده و لبه بالایی کوتاه که مخصوص جنوب شرق اروپاست به ما نگاه کردند و من خوشحال شدم که اتومبیل مجلل گتسبی کمی حواسشان را از غمی که داشتند پرت کرد وقتی از بلک ولز آیلند گذشتیم یک لیموزین از کنارمان رد شد که رانندش سفید پوست بود و دو پسر و یک دختر شیک و پیک سیاه پوست توی آن نشسته بودند و وقتی زده تخم چشمشان برای چشم هم چشمی و فخر فروشی به سمت ما برگشت من با صدای بلند خندیدم. فکر کردم حالا که خوشخوشان از روی این پل رد شدیم، هر چیزی ممکن است واقعیت داشته باشد. هر چیزی، حتی گتسپی، بدون هیچ تعجبی. سر ظهر در زیر زمین خونکی در خیابان چهل و دوم، گتسپی را برای ناهار دیدم از روشنایی خیابان که وارد شدم، چند بار پلک زدم تا چشمهایم به فهمی نفهمی او را در اتاق انتظار تشخیص دهد داشت با کسی حرف میزد. آقای کاراوی، ایشون دوستم آقای وولز هستند مردی بود یهودی با دماغ کفتهی و سیبیل‌های پرپشتی که از زیر سوراخ بینیش آویزان بود. سر بزرگش را بالا گرفت و به من احترام گذاشت. لحظه گذشت تا توانستم چشمان ریزش را در آن فضای نیمه تاریک کشف کنم. آقای وولفزهایم در حالی که سمیمانه دستم را میفشورد گفت نگاهی بهش انداختم و فکر میکنی چیکار کردم؟ محترمانه پرسیدم چیکار؟ اما از قرار معلوم با من حرف نمیزد چون دستم را ول کرد و با آن دماغ باحالش گتسبی را نشانه رفت پول را دادم به کتسبا و گفتم خب کتسبا تا دهنشو نبسته یه پاپاسی هم بهش نمیدی و درجا دهنشو بست گتسبی بازو به بازوی من انداخت و برد به سمت رستوران و آقای ولفهایم جمله جدیدی که میخواست بگوید را غورد داد و دوچاره نوعی منگی مخصوص خواب گرد ها شد سر پیش خدمت پرسید؟ با سودا و یخ آقای وولزفایم در حالی که به پریهای کلیسای نقش بسته بر سخف نگاه می‌کرد گفت اینجا هم رستوران قشنگیه ولی من رستوران اون طرف خیابونو بیشتر دوست دارم گتسبی به سر پیش خدمت گفت بله با سودا و یخ و رو به وولزفایم گفت اونجا خیلی گرمه آقای وولزفایم گفت هم گرمه هم کوچیک و هم پر از خاطره پرسیدم. صحبت کدوم رستورانه؟ متروپول قدیمی آقای وولزفایم با چهره افسرده تکرار کرد متروپول قدیمی پر از چهرههایی که مردن و رفتن پر از دوستایی که برای همیشه رفتن نمیتونم اون شبی که روزی روزنتال رو با تیر زدن فراموش کنم شیش نفر سر میز نشسته بودیم و روزی تمام شب رو مشروب خورده بود نزدیک صبح بود که پیش خدمت اومد بالا سر روزی و با اون نگاه مسخره بهش گفت یکی اون بیرون میخواد باش حرف بزنه روزی گفت باشه و خواست پاشه که من نشوندمش رو صندلی گفتم بذار اون حرومزادایی که کار دانم بیان تو ساعت چهار صبح بود و اگه پرده رو میزدی کنار میشد روشنایی روز و دید با ساده پرسیدم رفت آقای وولزفایم رنجید خاطر دماغش را سوی من نشانه گرفت و گفت رفت سمت در را گفت نظری پیش خدمت قهوه منو ببره بعدش رفت بیرون و اونام سه تیر خالی کردن تو شکمش و گازشو گرفتن رفت من که چیزهایی یادم آمده بود گفتم چهار تاشونو با صندلی الکتریکی ادام کردند با بکر تا و سوراخ بینیش را علاقمندانه به سمت من گرداند گویا برای کسب و کار دنبال رابط می ها همراهی این دو موضوع گتسبی را ترساند و به جای من جواب داد آه نه ایشون اون آقا نیستن آقای وولز که ناامید به نظر می رسید گفت نیستن ایشون دوست منه گفتم که در مورد اون موضوع یه وقت دیگه حرف می زنیم. ببخشید عوضی گرفتم. خوراک گوشت آبداری رسید و آقای وولزفایم جو احساسی متروپول قدیمی را از یاد برد و بی امان شروع به خوردن کرد و در همان حال چشمهایش خیلی آرام به اطراف می چرخید و آخرش برگشت و به آدمهایی که پشت سرش بودن نگاه کرد و دایره نگاهش را بست. به نظرم اگر به خاطر حضور من نبود نیم نگاهی هم به زیر میز خودمان من می گتسوی به سمت من خم شد و گفت ببین رفیق. من نگرانم نکنه امروز صبح تو ماشین ناراحتت کرده باشم. باز همون لبخند را میزد اما این بار در برابر لبخندش مقاومت کردم. من از رمز و راز و معما خوشم نمیاد و نمیفهمم چرا خودتون رو کراس نمیگین چی میخواین و باید حرفتون رو به واسطه چیز بیکر بزنین. با لحنی اتمینان بخش گفت هیچ کاسه ای زیر نمکاسه نیست. میدونید که دوشیزه بیکر ورزشکاره و هیچ وقت کاری رو که درست نباشه انجام نمیده بعد نگاهی به ساعتش انداخت از جا پرید و با عجله رفت بیرون و مرا به آقای والزفایم تنها گذشت آقای والزفایم در حالی که با چشم او را دنبال میکرد گفت باید یه جای زنگ زد جوون خوبیه نه یه پارچه آقاست بله همینطوره آکسفورد درس خونده راستی آره رفته کالج آکسوردت انگلیس کالجا آکسفوردو میشناسی؟ یه چیزایی شنیدم مشهورترین کالج دنیاست پرسیدم خیلی وقت گذبی رو می با رضایت جواب داد خیلی ساله. بعد جنگ بود که افتخار آشنایی پیدا کردم یه ساعت که حرف زدیم فهمیدم آدم با اصل و نصبی به تورم خورد با خودم گفتم این از اون دست آدمایی که دوست داری ببریش خونه و به خار مادرت معرفیش کنیم بعد مکسی کرد و گفت میبینم داری به دکمه سردستام نگاه میکنی به آنها نگاه نمی‌کردم، اما وقتی گفت نگاه کردم از آج درست شده بودند و به نفع عجیبی به چشمم آشنا میآمدند محز اطلاع هم گفت بهترین نمونه های دندون آسیای بشرا دکمه ها را وارسی کردم و گفتم عجب چه ایده بکری باستین هایش را کشید زیر کتش و گفت آره آره آره گتسپی خیلی در باره زنها محتاطه اون به زن دوست و آشنام نگاه هم نمیکنه. وقتی گتسپی که سوژه این اعتماد کوران بود برگشت سرمیز آقای وولزفایم یک ظرف قهوهش را سر کشید و بلند شد گفت آه. نهار خوبی بود حالا میخوام قبل از اینکه شما دو دو جوون عذرم و بخواین بزنم به چاک گتبی بدون هیچ اشتیاقی در صدایش گفت چه یه مایر آقای ولسهایم دستش را به نشانه تشکر بالا برد و خیلی متین و موقر گفت شما خیلی با ادبین ولی من مال یه نسل دیگهام بشینین از تفریحاتتون حرف بزنین از معشوقههاتون از و با حرکت دست به یک اسم خیالی اشاره کرد من پنجاه سالم سربارتون نمیشن وقتی دست میداد بینی قم زدش می درزید طوری که به شک افتادم نکند حرفی زدم که دلخورش کرده باشد. گتسپی گفت بعضی وقتها خیلی احساساتی میشه و امروزم یکی از همون روز است تو نیویورک برای خودش کسیه؟ تو برادوی زندگی میکنه مگه کیه؟ اون ها پیشه؟ او نه. دندون پزش؟ مایر ولسفای؟ گتسپی با تنی گفت تو کار شرطبندی و قماره. و بعد با خونسردی اضافه کرد، همون کسی که تو سال 1919 تو مسابقات نهایی بیسبال گاو بندی کرد. تکرار کردم، گاو بندی تو بیسبال گیت شده بودم، البته قضیه گاوبندی یادم بود، اما ذهنم را مشغول نکرده بود و به آن به دید یک اتفاق تمام شده نگاه می کردم که پایان یک سلسله حوادث اجتناب نپذیر بود، به فکرم هم نمیرسید که یک نفر به تواند با اعتماد پنجاه میلیون نفر بازی کند. آن هم مثل دزدی که گاف صندوقی را منفجر می کند. بعد از یک دقیقه پرسیدم چی شد که این کارو کرد؟ هیچی. دید موقعیتش جوره. خب چطور نیفتاد زندون؟ نتونستم بگیرنش رفیق. آدم زرنگیه. اصرار کردم پول نهار را من حساب کنم. وقتی پیش خدمت صورت حساب را آورد، شمایی از تام بیوکنن را بین جمعیت دیدم. گفتم، یه لحظه با من بیا، میخوام با یه نفر سلام علیک کنم. تام وقتی ما را دید از جایش پرید و چند قدم آمد به طرف ما و مشتاقانه گفت، کوکی پسه؟ پسر، دیزی خیلی دل که دیگه سراغی اما نمیگیری آقای بیوکنن، ایشون آقای گتسپی هستند. سرسری دستی با هم دادم و رگ از ناراحتی به چهره گتسبی دوید که برایم تازگی داشت و نشان از استراپ بود تام پرسید خب چطوری چی شده برای ناهار این همه را اومدی نهار رو باقای گتسبی خوردم به طرف گتسبی که برگشتم دیدم نیست